بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه اجمعين اما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات استوفيخ الله جل شأنه يبوسك ما تسني مواصفه ايمان راسري بكونين مخالفين اهل السنه رو هم شناستيم از مرجعه گرفته تا خوارج و از بهشون توهم زده بودن ازشون دفاع کردید میاد بازم مباحثی که بایدم بازم از ائمه اعلام از ائمه اهل سنت بازم دفاع بکنید بحث اینه که ما بر بگزید و کتاب و سنت مشکلاتمون حل بشه به نظر خود قرآن این تنازع و پیشه علم فرده الى الله والرسول بعد خداوند شما هم قرانش بر بگیرید و سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم. ما در مثالی نمازی که بود در وصار ایمان که بود که بود که شدن ایمان که بود برگشتیم به رسوس قرآن و سنت و مشکل منتج شد دیدیم که ایمان کم میشه ایمان فقط مدرد تصدیق هم نیست برخلاف قول مرجعی ای فقط تصدیق شناخت کافی و برخلاف قوارج همش که گفت ایمان اگر یک کثرت همش از بین میره همه این مسائل الحمدلله سفری کردیم الان اومدیم به بحث توحید بحث توحید حق یکی از بالترین حقود خدافن بر سر بندگان. این بحث توفیدو که می در ضمن بحث ایمان واردش میکنن کنند مثلا امام مسلم می بینیم اسم یک از کتابهاش یک از مباحثی که در کتابش داره اسم کتاب ایمانه که در ضمنش مسائل توفیدو ذکر میکنه خب یکی از کروه کروه ایمان همین توفیدو برمونه یکی از کروه ایمان چون بحث شناخت خداست بحث حقوق خداونده که برگرد به همون ایمان بعد که میم ایمان تصدیق و اقرار به خداونده خب پس خود توحیدم شامل ایمان میشه یا خود ایمانم شامل توحید میشه خب قبل از این که ما این مباحث توزیح بدیم انواع توحید و قبل از اینکه مباحث در مخالفین در همین توحید رو ذکر میپردازیم می‌پردازیم به خود این توحید در در لغت و بعداً در اصطلاح که به چه معنی توحید در لغت گرفته شده از واحد حد واحد و وحد یوحد توحید یک چیز رو یک تا قرار دادن بهش میگن توحید یک تا تک یک چیز تک و یک تا قرار دادن بهش میگن توحید این که امام جوهری در کتاب صحاها بشه میکنه بیکنه علامه لغت خرمه سبب نمیدم چهارا امام جوهری هم میگه توحید امام جرجانی برخشید یا برگانی خودمون بیگه که توحید در لغت الحکم با ان واحد و العلم با ان واحد توحید حکم دادن به یک چیز یک چیزه یکیه یه همون یکتاب بودن و یک چیز بودن اما در اطلاع خیلی راحت. شاید همیشه من هم تو سوال بکنم یعنی شاید هم یکی از مباحثی هست که پلیت همیشه همراهمون باشه به عدلش هم بحث بکنیم توشکر در اصطلاح یعنی اعتبار به این که خداوند خداوند مستحق یا افراد کرا... اف... ببخشید به عبارت دیگه افراد قرار دادن خداوند در ربوبیت یا تک قرار دادن یا یک تا قرار دارن خداوند افراد و تک و یک تا همه یک منا دارن تک قرار دادن یا یک تا قرار خداوند در روبیت و علوهیت و از محاسفات حالا من یک مثال میزنم برای تقریب ذهنی برای ای که این مسئله واضح تر بهتون بشه سوره فاتحه که شروع می الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یک نعمل و یک نستعین هر سنو تلحیدی که نماز کردین در اش هست الحمدلله رب العالمین رب تروردگاره بالمیلد بررهوبیت اقرار به این که خداوند خالق و رازقه و مدبر و مالکه اقرار به این که خداوند خالق و مدبر و مالکه این سا جامع رهوبیت خالق مدبر تدبیر فرنده یعنی کسی خالق منو به بکنه خالقش رو خلقت کرد و بعد مثلیش هم مدبرش بکنه انسان هم اینچو خالق و مدبر و مالک مالکشم هم هست همیشه دست خداونده هر کاری بخواد میکنه هر چیزیام بخواد خلقت میکنه خداوند خالق مشی خلق کرده و خودشه از خلقش خارج نشده دستم بالا میبرم خلق خدا دستم پایین میبرم خلق خداونده از خلق خود خارج نشده من فاعلا من خالق این عمل نیستم خالق عمل کیه کی خلق کرده این من، قدرت من که دیگه را در من گذاشته به این خدا در من خلق کرده پس مالک همه اینها خداوند است الرحمن الرحیم اقرار به اسما و صفات خداوند خداوند از تمام رحیمین خدا, من. خدا, خدا صاحب رحمت کله از رحمتش ما خلق کرد از رحمتش فرشتگان را خلق کرد از رحمتش همین که ما بدش مقدمش شیطان شیتون خلق کرد تک می کنیم که شیطان باشه. اگر شیطان نبود دیگه جهادی نبود. دیگه مردانگی نبود. دیگه جرأتی نبود. دیگه مرد از نامرد دیگه مشخص نمی‌شد. منافق از منافق مشخص نمیشد. همین شیطونه. همین جنی که پرچم توحید و پرچم جهاد بالا می ده. همین شیطونه که سبب میشه من و شما خداوند واسطه دل بشناسیم. از اختیار خودمون حقشو به جا بیاریم. از همین صفاتی که انسان متوجه میشه غفاری هست. اگر ابلیس نبود خودم که از منده میدونه که خداوند غفاره خداوند ارحم راحمینه این صفات مشخص نمیشد حالا میمونه این مبحث قضا و قدر که آخری به از صفات خدا بود لیکن الان چیزی که برای ما مهمه اقرار به صفات خدا و اسماء صفات خداوند اون صفاتی خداوند داره بدون این که مثال بزنیم بدون این که کیفیت کیفیتش بدیم بدون این که اصلا نسب بکنیم مثلا کلا از خدا مثل معتزله که اصلا صفات کل ناتکله صفات خداوند صفات نداره تمامی این موحف بدونی که مثال بزنیم مثلا بگیم که خداوند دست داره مثل ما یا میبینه مثل ما این ما به من سریع الان رو بور میکنم لیکن مفصلش قاها ما میخوام پله پله بریم قدران آن توضیح و شرخ الواع توحیده اقرار گفتیم اقرار به وحدانیت خداوند در روح در اتماعتفاد و در الوحیت که مرتکد دعوت انبیان ایا که نعبود و ایا که نستعید هدف رسالات هدف خ، خل... خلق، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف خلقتهم وهؤلاء. ليش أستلم هذا الإنجاح؟ شبهة، عبودية خضابات يكتاف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أنا عبد الله واجتنبوا تقوى. دعوة أمنيهم هدف شبهة، توحيد عبوديات، وتوحيد أولويات خضابات. إقرار بيك خضابات فخذ تمر فيها قعودك، تقبل فلا تجبي. ما تبعد حدثهم من وشيك. إنس أو توحيد؟ تعزز رأي فاسحه. جمع شده و در دیگه سوره های قرآن و در دیگه سوره های قرآن قرآن هسته خشبرق بذنی توحیده یا بحث از و آقرته که آقبت موحدین و گناهکارانه یا بحث از سیانبرانه که برای توحید جون کندن و کشته شدن و دعوت دادن و عذیت آزار دیدن یا توحید در قرآن بحث از صراحت میکنه اعبد الله ولا نتشر به چیزیه که ریحه دست به عبادت حق خداوندی یا بحث الصفات صفات خداوندی یا بحث ربویت خداوندی و اللهی خلق فی جميع همه اینها برمیگرده میگه آخرش بچی بخود خدا قرآن پر همهش خدا قرآن پر همش توسعیده همش قرآن به خدا خدا و یک تایی یک تایی خداوند قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم له کفون احد این تمامیه معانی توحیدی که در قرآن اومده و قرآن در بر گرفته این معانی توحید را میمونه مذهبی که قبل از اینکه انواع توحید شروع بشه مذهبی که مهمه و اونم این که یک بنده که میخواد مؤمن بشه یک بنده که میخواد مؤمن بشه بر چه طبق چه بر چه طبق چه براهینی باید خودمان را بپرسته الان از از نفل از خس از نمیدونم نشانه هایی که هست تمامی چیزها فقط ما مطلبی که برای ما مهمه چه راه هایی هست برای شناخت خدا چه ای برای شناخت خدا هست و خودمان چه عدلهی گذاشته بر اینکه ما بر ما ارقامت حجت بشه و فقط خدا برای را بپرستیم عدله زیاده حد چند که وجود الخدا نياز للدليل ندرة أفن الله شك أفن الله شك فاتر الفاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إبراهيم ييداه إبراهيم ييداه أفن الله شك أين الخدا شك الخدا شك للدليل نياز للدليل القرآن ندرة بل باين وجود باين وجود چون انسان های احمق و نادایی پیدا میشن که وجود خدا را انکار بکنن طبع خودشون طبیعت خودشون فکرت خودشون را انکار بکنند به خاطر همین تا گذاشته در آسمان و زمین عدل و فیفی انفوسکم افلا تشتیرون تا گذاشته عدل برحان اول سریح ترین برحان و سریح ترین دلیل بر وجود خدا من شهادت خود خدا من بر وحدنیتش شهادت خود خدا من بر وحدنیتش شهید الله انه لا اله الا هو خود خداوند بر وحدانیتش هیچ کسی نبوده که گفته من بر حقم واسه من بپرسید اگر فرعون بوده اگر نبی نمرود بوده که شهادتشون برحق نبوده بنده ای بودن که عاجز موندند در مقابل ابراهیم نمرود عاجز موند نتونست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 چقدر قدرت داره و چه کار بکنه آیا میتونه خودشو از مرگ و مردد نجات بده یا نه پس بالاترین شهادت ها شهادت خداوند پل ای شی ان اکبر قل الله شهید بینی و بینه قل ای شی ان اکبر چی دیگه شهادت و گواه بالاتر از گواه خداوند میفای دیگه چی دیگه گواه بالاتر از گواه خداوند نیست دومین دو شهادت شهادت ملائکه است شهد الله أنه لا إله إلا هو هو الملائكة العلم قائمة من القصد دوميش ملائكة بس دوميشا شهادت قلو العلم شهادت منها إكه علم شرعي دارن شهادت منها إكه علم شرعي دارن لتالي 1400 سنة ولما دارن كتاب من ويسان الشرع متحار دين الإسلام دارن دفاع میکنن آیا اینها حق نداشتن آیا این جيك میلیارد دور دي مسلمونك در دنیا هست، همی دو عقل رو میفرستن، آیا بر خلاف فطرتشون عقلشون دارن عمل میکنن؟ همه اینها جز ادله وحدانیه به از جمله شهادت‌ها، شهادت پیامبران شهادت خداونده و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوشی ایله، انه لا الهه ایلا آنها من قبل الرسول بعثنا في كل أمة رسولا الله دعوت تمامی انبیاء دعوت به توافق بوده پس همه شهادت دادن بر وحدانیت خدا خداوند و سنت متحر مصطفی صلی عليه علیه و سلم هم گواهی بر این مسئله و کتاب های آسمانی هم گواهی تورات بگیر انجیل هم بگیر از جمله براهین و ادله بر وحدانیت خدا خداوند شهادت عقلات حتی که عقلشون صالب نیست در خیلی جهازی که همین اشخاصی که به اسم فیلسوف و به اسم من دانشمند اونها را میشناسن کباه اونها هم کافیه کباه اونها هم کافیه کافی که نید که یکی از ادله و براهین بر وحدانیت خدا بند و سقرات و ارستافیایوت و, و نمیدونم فیساغورت و اینا همه یکی ای از فیلسوفانی که بودند از ریاضیدانانی که بودند در روم در نمیدونم اروپا و همه اینها اقرار دادن که باید خدا باشه. لیکن حالا باید اختلاف کردن در اینکه خدا چطور باشه و چطور نباشه و نمیدونم ارسطو میگه باید نهجت نباشه. چی میخوان بگن؟ این فیلسوف چی میخواد بگه؟ میگه باید خدا باشه و خدا هم هست، لیکن حالا نمیدونه خداش هست. میخواد برای خدا شکل قالب بده، نمی‌کنه. می‌دونه قیاس میگره برای خدا. و این مثالی که جای خودش داره. لیکن مهم اینه. که در تمامی ادیان حالا چه سماوی چه درستی همین خدای یک خدایی رو قبول دارن بوتری بوتری نمی پس خدایی هست پس خدای خدایی فرشتیده بشه هر مشرکینه قریش قل منی من یعبدو من نعلم ما و فلان تا آخر دیگه پس الله پس اقرار دارن به اینکه خدایی هست ساده سه قوم قریشه ابو سفیان اقرار داره نمیدونم فلان اقرار داره اقرار دارن به اینکه خداي هست و خدای باید باشه از جمله براهین یا برهان ها برهان خلق یا خلقت خداوند که اگر این ملحف باز واض بکنیم هم شیرین هم جالب لیکن این مباحث رو علما گذاشتن برای عوام آدم جاهایی در سخنرانی بهش اشاره میکنم یا در برخی مغزهایی سر کلاسی کبچه ها جاهای از باب نعاف و از باب شکر نعمت خدا کسان نگاه میکنه مثلا در سخنات خدا اشاره زیاده در قرآن. الله لی تعالیم من الأرض فراشا و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج من السماء رزق لكم این نشانه ها باران می باره نگاه بکنید چطور سبزی ها می رویند نگاه خورشید بکنید و الشمس و القمر قسم می خورند به الشمس و قمر و فی انفسکم افلا تبصرون در نفس خودت نگاه بکنید. نشانه های خلقت زیاده تدبر بکنید. در نفس خودت غذایی که می خورید میره به معده هضم میشه آب با غذا خاطی میشه. آب تبدیل به ادرار میشه میره به کلیه هیچ وقت همراه تو بیرون نمیاد این نظامی کی سی میگه رو داشته این خوده چشم انسان چشم انسان چیه سلول نمیدونم پروتون و نوترون رو نمیدونم این چیزهایی که ساخته شده میلیارد ها نه میلیارد ها سلول در یک چشم او نمیدونم در یک همین مرزومه که چشم قرار گرفته که در روز در روز فقط یک میلیونش تلف میشه یک منون نمیدم چقدر تلف میشه یعنی مخلوقات خدا بی حد حسابه یعنی انسان فقط نگاه کلیش بکنه نگاه جهریاتش نکنه همین کلیاتش خب این انسان این انسان که زمین ها دیگی؟ انسان از دور و ما بالا از دور از مرچه هم که چکتر خودشون دینه چه برسه به این کره زمین چه برسه نسبت به خرشید که میلیون ها بار از زمین چه به چه به که هستان رایت چه به وسط عطارود و نبیدن مشتری و نبیدن دیگر سیارات و تسارگانی که هستند؟ چی هستن این مخلوقات؟ هیچی به نمیاد نمیان هم که در حدیثی که خاکن هم به ششاره شده که آسمون ها و زمین ها تمامی هف آسمون و تمامی تمامی مخلوقات مثل یک خلقی در یک ترزمین در مقابل کرسی خداوند و کرسی خداوند در مقابل عرش خداوند مث غیبی شن نگاه بکنه چی به حساب در ذهن انسان خود انسان اگر فکری بکنه توجهی به داخل خودش چقدر تنظیم چقدر نمیدونه این دست حرکت میکنه یعنی این همه سلول این همه نمیدونن فدوان این همه تنظیمات بدونی که از ردش خارج بشه خورشید به این بزرگی در اعماق ایستاده یکم پایین نمیاد این زمین چه توازنی هست چه تطونی هست چی این زمین رو گرفته که یکم پایین نمیادی یادی کم یک روز یک ثانیه کمتر نمیشه دقیق داره میچرخه یک شبانه میتفعه سر جاش بر میگرده چطوره که این زمین تقلقی نمیزنه یک ثانیه عقب نمیزنه یعنی اگر انسان نگاه بکنه به شمس و القمر رو مثلا به خصبان به خصبان نیشی یعنی حساب کتاب داره هم ماهش هم خورشید حساب و کتاب دار. اگه حساب و کتاب نداشته، چطور می‌فهمید کی این مزه بگیرد و کینه می‌دونه فلانه؟ همه اینها داره هم در جذر و هم آب، هم در سرروزی، هم در شنافت باد و هوا. همش حساب و کتاب. الشمس و القمر و حساب و کتاب داره برای خودش. نگاه بکنید خورشید این بزرگی. انسان تو خودت متقابله. نمی‌گویی روی هوا چطوره که خورشید بیین بزرگی، بین بی آنلود؟ که ها بار از زمین هم در هوا فقط ایستاده در هوا در این خلق که هیچی نیست داره روز روزم منفجر میشه در اثر انفجار هم حرکت نمی کنه چرا حرکت نمی کنه؟ کی اونها رو گرفته؟ غیر از خدا کسیم توان فرشته و توانه من و شما میرده؟ توان هیچ کس نمیرده میخواد بگه خداوند نگاه این خلق بکنید سبحان اللذی خلق الادواج کلها مما تمبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمان نگاه کلی ازدواج زوجیت وحدانیت خواست خدا شما همه در روی زمین باید ذکر اونسا باشید از درخ گرفته مورچه گرفته انسان گرفته از همین سلول از همین پروتون و نوترون دو تا قسم مخالف مثبت و منفی همش زوجیته بدون مرد و بدنم بدون مردی نیست. همه با هم ذکر اونسا باید باشه در مخلوقات. هیچ مخلوقی، هیچ مخلوقی نمیتونی پیدا بکنی بدون جذب و چی میخواد خدا من با این مخلوقات؟ میخواد بگه که من فقط واحدم. قل هو الله احد. لم یلد و لم یولد. خدابنده که فقط لم یلد. نمیدونی آمده و لم یولد و بچه هم يزاید. ما اینکه که باید بذاریم، ما اینکه که باید بچه بیارییم ما اینکه که باید درده بکنیم تا که حبز بشیم. خداوند نه نیاز به کسی داره و نه هم خداوند به دنیا آمده. خداوند مستاج حقیقی نیست. نه مستاج من و نه مستاج شماست. این عظمت است این خدرت بی پایان است به خاطر همین خداوند دستور میده که ما نگاهی به مخلوقات خداوند بکنیم. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق سنريهم اياتنا في الافاق خدابا اياتش نشون میده اون شخصی که اولی شخصی که الا اسمش فراموش کردم که رفته بود به کره ما در کره ما در کره ما صدای اذان بر میگرده خدا را نباو کنید خدا سنوری هم آیاته باید آیات و نشانه خدا باید به بندگان بره. رفته کره ما صدای ازان شنیده الله اکبر الله اکبر و, و اشلام لا اله الا الله و محمد رسول الله و الله و حیال, حیال شنیده میاد گندش به بعد همراه گستاشه صدای اذانی میشنوه میگه این چیه صدا غریب نیست به هم میگه این صدای اذان مسلمون میگه من همین صدا را در ماه شدیدم همین صدا را در ماه شنیدم. سبحان الله خدا میخواد نشون بده ای بندگان غافل نباشید کافر ها اینم الله علیان صراحات عزیزیم به راجون فاجر شخص فاجر یا لیکن کافر هم بوده خداوند میخواد حدایتش بکنه میخواد حق نشون بده خداوند میخواد اینو بیم و ما ک نه حتی ح نبده را تا اینکه حدایت نکنیم و حقی نشونی کسی یماعداب نمیدیم. بخاطر همین می که خداوند هر زمان یک شخص مزفر میکنه که این رو تجدید بکنه این را به مردم برزنه حق نشون مردم بده. یا اون پروپور رو نون روسی میاد، بحث میادبح رو مطرح میکنه که بله جنین در چار لایه قرار گرفته حالا همون بحث مدغه و نمیدنم معلقه و فلانی که در قرآن اومده میوزه این مساله اشاره میکنه که بله واقعا خدایا راست گفته این جری این مراحل تنین خیلی دقیقه چطور 1400 سال پیش در این قرآن اومده حتما یک نیرو حتما یک مساله جدی بوده یک کسی که از این غیبیات با خبر بوده خبر داده واقعا قمینه بر بگید از وقت سیجنی ببینید چطور حکایت میکنه این جنینی که اول در رحم باقی میمونه، بعد آویزون میشه این مرحله که عبور بکنه تا اینکه که بیرون میاد اگاه بکنید سبحان الله خداوندی که بخواد بنده را هدایت بکنه اون بچه نوزاد وقتی که به دنیا میاد خرما را بیگیدید تحنیکش بکنید میمکه سبحان الله کی را هدایت کرد که پستان مادر را بمکه کی هدایتش کرد کی به را فهمید بحث داشت این آیه هست این نشانه هست این بچه کوچکی ای کچه ای که نداره چطور فهمید آیا خود به خود انسان میتونه بفهمه؟ این نوزادی که اصلا نمیدونه چی بی چیه از چکر مادر از بیرون اومده آه از نمیدونه چیه هیچی نمیدونه ولی هدایت میشه شیر خوردن شیر مکیدن این قدره دیگه توانی که خدا گذاشته بعد از اون برم دفش بکنه قدرت خداونده که میخواد به ما عاقل بکنه میخواد ما را بفهمه عاقل باشیم بین بی آیات قرآن نگاه بکنیم این شصوری که مثال میدنه این خورشید و این ماه و این ستاره و این ها برای چی گذاشته این کشتی این آب یه روزی دیروز, دیروز بودم پریز پریروز از من در بیامدم یه شخصی گفت گفت که من این تعجب تحجبه باسه من. باسه من چرا خداوند در قرآن این همه مث وحب و دریا میزنه و بحث فلک میکنه بحث کشتی رو میکنه خداوند چی میخواد بگه؟ میگه چیز جالبتر از آب نبوده این آب چه خاصیتی داره که خداوند؟ این قد مسال میزنه بودش در قرآن آب رند زندگی است آب که همین انسان ساخته میشه با اون آب همین بله نطفه ای. نطفه ای که ما داریم همین آب آب نبود این نطفه هم نبود آبی که همین دریا بخار میشه بعد از بارا دنیا سر, سر میشه همین آبی که ما میتونیم نفس بکشیم همین آبی که ما باید با اون زنده بمونیم اگر این آب نبود خدا میدونه چه چی چیز میتونست جاییم می این بیگیره فکر نکنم چیزی میتونست جای این می بیگیره چون اگر بود خدا من میگذاشت این آبی که هست این دریایی که هست یک ای شده برای این که ما راحت تر به هم دستگاه پیدا بکنیم همین آب که حد در زیرش چقدر میلیاردها ماهی و نبیدارن مخلوق در خودش جا دازه خب خداوند عظیمه خداوند خاطر حضمتش به یک عظیمی اشاره میکنه و به یک نشانه بزرگی به من هدایت میکنه اگر مثال به کوه میدهد میگفت کوه نگاه بکنید خب درش ماهی هست خب بودورگه دیگه دیدین حیا بیات زندگی نمیدونم اون نشانه هایی که در این آب نهفته است این عظمتی که در این آب نهفته است درک نیست. بخاطر هم دیگه خداوند به آب مثال میزنه این آبی که همه جا هست در صحراش از ذری کی نمیبینی لیکن آب در آنجا برش نیاز داری این آب رمز زندگی است بخاطر همین دیگه که خداوند میگه که چی از آب زندگانی را همه چیز را از آب ساختیم خب این عقله این فهمه این شخص یک مهندسی بیشتر ده بود که از سوال کرد خداوند این علامت صفحامو درش گذاشت چرا این آب قرآن را بقید مطالعه کرده در این آب یک غم زیده یک علامت صفحامو چرا خداوند این علامتان را به آب زد خب همین خوبه همین یک وسیلی هست برای هدایت شدن وسیلی هست برای شناخت خدا یک مسئله هست، نمیتونم امشب وقتش بشه بهش اشاره بکنیم. دلالت عقل، دلالت فترت که خیلی طورانیه. سعی میکنیم چرا در چندین جلسه به مطالب مهم فترت و نقش آن در شناخت خدا اشاره بکنیم. بحثی هست اختلافی، اختلاف در مظلی فترت خیلی شدیده و رسی می هم احالی، هم اعتقاد مخالفی و اعتقاد اهل سنت، و قول راجع میمونه از ادله در وحدانیت خداوند دلالت شرع دلالت شرع و دلالت نقل همین کتاب های آسمانی که هست همین تورات و همین انجیل و همین قرآنی که ما داریم همین خبرهایی که در قرآن هست واقعی موسا و فرعون و نمیدونم ابراهیم و این قصرهایی که در تمامی کتاب های آسمانی نقل شده خبر از نمیدونم از دهان به دهان داره نخون میشه در زمان پیانبر صلی الله علیه و سلم هم خبرهایی از ابراهیم داشتند مشرکینی که میراثند به منا و عرفات مرشدکینی که خدا نداشتند مشرکینی که از بعد از اسماعیل پیامبری نداشتند بیکن چون دهان به دهان نفوذ می‌شد قصه‌های پیامبران پیشی از ابراهیم و شعیب و ود و حامان و غیر گرفته شده از اون اقوامی که هلاك شد از قوم و غیر همه دهان به دهان نقلش میکردن. به خاطر همینی که رسول وقتی که از این قصه های واقعی خبر داد گفتن چی اساطیر الاولین اسطوره هاست افسانه های قدیمه چون میدرسن این افسانه نبود این حقیقتی بود که نقل میشد سبحان الله متأسفانه بعضی هم چون سروش پیدا میشن با این وجود که خداوند ملامت شدید میکنه بر این مشرکین که میگن اینها افسانه هست ملامت شدید بر این مشرکین میکنه که میگفتن که این قصه های ابراهیم و نوح استوره و افسانه هست ملامت شدید بلکه که کفر نفاق با کفر نفاق اونها رو سرزنش نش میکنه باید سروش ما بلند میشه میگه این قصه ها افتانه هست حقیقت نداره یعنی میخواد بگه خدا من هم دو داستان ما خودمون دروغین میسازیم این, این قصه ها من حقیقت بوده که نبوده ابراهیمی که نبوده این مجرد خواب و خیال هایی هست از هایی هست که محمد از ذهن خودش ساخته محمد یک شخصی بود همون طول ابن که علما تصویرش کرده نبوتش احتسابی بوده این قرآن از دستاویخت، از ساختار محمد خودش اومده این قطعه ها رو داستان ها ساخته که ما را تشویق بکنه عقل ما را بسازه بله این چیزین کفایت هست این چیزینی هایی که آیات قران نمیکنه پیامبری که صلی الله علیه و علیه می بود نمیتونه بگه نامه رو میاره علی رضی الله عنه میگه اسم الله کجا نوشته که من خودم فاق علی راضی نمیشه که اسم رسول الله را فاق بکنه رسولان میگه من خودم فاق میکنم چطوره که این پیامبر علیه و السلام بیاد افسانه افساده بشه و دودی که نمیتونست شعر بگه و خدامند این توفیق شعر رو بهش نداده بود به خاطر چی؟ مقاوره که نگم که روزی این پیامبر شاعر بود یا کتی بهش یاد داده یا رسول الله و صلی الله علیه و سلم یقین میکنه تا این که بره در صحرا بزرگ بشه تا این که کسی نباشه که ماجراهای بهش تعریف بکنه افسانه های بهش تعریف بکنه این تهمتی که بهش میزنید خب کی بهش یاد داده در شهری که نبوده صاحب کتابی که نبوده، صاحب انجیلی نبوده که بیاد باش اش بکنه کنه. چی بوده رسول الله صلی اللہ علیه و سنم؟ سالار بود رو میورده و میورده. برای چی؟ سفتش فاک باشه. دلش صاف و باشه. دیگه فردا نگهنه که این شخص کسی به اشیاد داده. بله خدا من خواسته این حکمت باری تعالی که در رسول الله صلی الله علیه و سلم نهاده تا اینکه ما یکم فکر بزنیم. این که ما باشیم. بچیم خودت میاد اینجینی قران یانه به فرد از قول خودش اختراع میکنه میتونه از ذهن خودش کجاست شما که میگه پیامبری اختصابی <تصفيق> کجاست اون شخصی که به دره پیامبری رسیده منظور حلاج که ندن از تقول دفاع بکنه و برای دار آویخته شد والله الحمد توسل به حدین یومی یا جهنم یا جهنم که در صد خالد قطریکو میشه یا المختار الثقفی کجان اینهایی ای که داری نبوت کردن و طالب موندن هیچ کدومشون نیستن بله باید خشته بشن چون بعد ناحقن بی که رسول صلی الله علیه و سلم باید محججش خالد و مخلط باقی مونه چون دعوتش به افتایی گیر خدا بود پس دلالت شرع دلالت این قرآن و این سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم یکی از قبیه تری عدله بر اینکه خداوند یکتایی <تصفيق> است که باید پرستیده بشه ام تَقَدُمُ مِنْ دُونِهِ آلِهَة قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِمَّعِي هَذَا ذِكْرٌ مِمَّعِي وَذِكْرٌ مِمَّنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُون إله إلا أنا و دعوت بسیه یگانیگی و یکتائیگی خداوند در توحید عبادت و فرستش خداوند متعان ها در ذکر رو من معید ببینید بشین. امت های پیشینی که با خدا مبارزه کردن به کجا رسیدن و چه بلایی پرشون در اومد از جمله براهین و ادله دلالت حس دلالت احساس انسان احساس انسان چطور؟ ما می‌بینیم انسانی در صحرا انسانی، در دریا سوار کشتی و سوار لنچ و فلانه خدا را دعا میکنه، من را با چشش میبینه ولی که دست به دعا برمیداره و نجال پیدا میکنه این شخصی که دست به خدا بر. ما خودمون چقدر مشکلات داشتیم، چقدر خدا ما رو نجات داد کم بوده، چقدر گوداله ها و چقدر چاله ها جلو بود؟ و خداوند ما رو نجات داد و خداوند ما رو به اینجا رسد چاله های گمراهی چالال، رو نگاه بکنید از وقتی در مدرسه کفر و الحق تا حالا در جامعه و تلویزیون و فلان، این همه کلان های پساک این نجات خودمون کشندن خدا بود که ما رو کشوند به این مسجد برای شنافت خدا مگر کمه احساس انسان این احساس رو میخواد انسان انکار بکنه بخاطر همینه که خدا حتی اذا کنتم فلپلکی و جرائن بیهم بریح طیبت فرح و بیها تا آخر که بحث انسان میکنه که اگر در تنگیه قرار بگیره دست رو کجا بلا میکنه دست رو کجا بلا میبره فقط الله کسی نبوده که در نیچنی مشکلی که گیه ننکنه کسی نبوده که قدامت اینچنین احساسی بهش نده مون از وقتی کوچیکی من یاد دارم. هفت ساله گرفت، تا دو ساله گرفت. از همون دو سالگی وقتی که افتادم به جمیل گفتم ای خدا ای خدا ای خدا تا حالا غیرت خدا کسی دیگر رو ندیدم. وقتی می خودم من دست پدرم میرد و میگویشه ای خدا فقط تو من تا داری تو از دل من باخبری. من خودم دارم میگم از همون دو سالگی. دیگه چه برده به آنهایی که به در عمری هم گذاشته میخوان این احساس این کار بکنن میخوان فردا جلو خدا بیام بگن که ما ای خدا تو رو ندیدیم ای خدا ما تو رو نشناختین ای خدا دلیل بهمون نداری بیا مردی جلو خدا بیام این احساس این کار بکن مردی بگو ای خدا حدیثی نیومد مردی بگو ای خدا قرآنی نبود فردا خدا دردن میگیره و این قرآن میاد و گواه بیده این خدا من بودم فهم منم بود بی که نخواستم بفهمن نخواستم بخوند و نخوندن منتظر باشید که این قرآن حجت بر ما نباشه حجت بر ما و علیه ما نباشه حجتی برای ما باشه نهبر علیه ما اینو از خدا بخواهید که این قرآن خواهد اومد این احساس است از جمله احساس محجزات پیانبرانه که خالد و باقی مونده بله فیلسوفانی از همین جزیره قشم خودمونم پیدا میشن که جلوه ماها بیستن و بگن ونشق القمری حاصل نشده بله از همین خود قشم خود خودمون اشخاصی پیدا میشن که متأثر به فکر آقای ابن سینا میشن اینقدر بزرگش میکنن فیلسوف و طبیب بزرگ که بیان چی؟ که ونشق قمر را این کار بکنن لیکن اب الله، الا ان يتم نور اب اللہ الا ان ينير القلوب خاصه تمامی های بندگان خاصه که نورش به قلبها برسه نورش به مغز ماها برسه ببینیم همین هایی که بنش خلقوری که مشرکین در طول تاریخ اقرار کردند اونهایی که در شام بودن و آمدن به حج گفتن که ما هم رؤیت کردیم که ماه نثل شد رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره به ماه میکنند و ماه نثل میشه اگر موسی زد به اون آب و اون دریان شد رسول الله معجزه بزرگتر از این رو خداوند بهش داد تا بگه بر بندگان بزرگتر از محمد در میان انبیا نیست اشاره به ماه میکنه ماه نثل میشه تا همه مشرکین و تمام خلق در اون روز ببینند که این معجزه کار بنی آدم نیست بله فیرسیفان 1400 ساله که میخوان انکارو بکنن که این منشق القمر کجاست کجاست انشقاق القمر کجاست این ماهی که نت شده بله ما در خود تایت ناسا رو دیدیم همین ماه هایی که فرستاده شد میبینیم که بعد از مدت یارا اثارو پنهان کردن عکس گرفتن علا خودشانم نمیدنن میگن ما در تهی بررسی در بررسی دقیق ماه دیدیم که ماه یک شیاری عمیق وسط این ماه هست کره ماه که این ماه وقتی که روی هم قرار گرفته نصف کره ماه نیمه ماه فاین فا نیمه دیگرش بالاتر از دیگری این ماه دقیقی هم نبوده این ماه نصفه هست شیاری از بالا تا پایین در وسط ماه هست و غیر از این, این ماه دقیق اگر کوروی بود اگر همونطور که میگن در اثر انفجار حاصل شده، باید مثل زمین همبستگی و همدستگی درش بود، هیچ جا از دیگری بالاتر. چطوره که این ما، اصل اکس اصلشون هم خودشون فهم تو دور سایه خودشون. الانم شما پیدا بکنید، ولی خب مخفی کردن. چون یک دلیلی بود برای ماها که میگفتیم برید نگاه بکنید شما یکی که انکار میکنید این معجزات توسط الله تبارک و تعالی موجوده در خارج از این قرانی که هست. غیر از این قرآن معجزه‌ای که خداوند میگه بیایید ده نفر بیایید سد نفر بیایید همین مخلوقات جنوان ازتا جمع بشید یک سوره مثل قرآن بگید نمیتونید و نه هایی توانش نمیتونید یک آیه مثل قرآن بیارید آلا غیر از این قرآن همین ما خب آرا چیکار میکنید ما سر یه با مسجده و غیر الان این فیلسوفان بیگید جواب خودتون شما این شما باست همه را این کن الان الان بیاید قرآن بشید بازم نمیخوان بشن این جهوده این استکبار، و جهد ها و سیقنس ها اموزه جهود استنکار و استکبار بعد بگید نه اینا که دین بهشون نرسیده نه اینا بهشون کافر نگید دیگه آیا سی موجزاتی بیشتر از این کی هست و کی غیر از مسلمان ها شده. در قرآن و در سنت قصف صلی الله عليه و سلم این نشانه ها هست این احساسات هست درست خیلی چیزها ما ندیریم اون دستی که چشمه میشه ده هزار نفر از در جنگ تبوک از اون چشمه میخورن. بله موسیٰ در باعثا زد دوازه چشمه نمیدونم چشمه ها سراردیر شد رسول الله موجزه بالاتر از اون رو خدا من بهش داد دستش رو تو آب میذاره ده هزار نفر. اگر اونجا دوازه سبت هزار نفر رو نویدم چند هزار نفر بودن یک لشکر از یک دست از یک جزت میخورن. بیرون آب از آب از سنگ ممکنه. لیکن از دست با عقل ولی خداوند من خواهد معجزهی باشه که بشری نتونیشین این کاری بکنه. یالا مرز این مختار زقهی. مرز نمیدونم مسلمه ای کساب بیاد این چیز این معجزهاتی رو بکنه. میوت اونهایی که ادعای خدایی و ادعای فلانی ادعای پیامبری میکنن این معجزه هست این معجزه ای بزرگه نقل کردن ما هم محمدیین بر سر و چش بل امکان پدیره چون بزرگتر از این امکان پذیر بود همین ماهی که هست همین قرآنی که هست اگر ما به این احساسات نگاه بکنیم این چیزی که در حس با چشم خودمون بینیم قرآن رو با چشم خودمون میشنویم در دل ما تاثیر میذاره همین که میکنیم مریض رو پیدا میکنه همش خاتمش چیه؟ خاتمش قرآن کلام نیست قرآن وحی الهیست که باید به با اون تذکیب پیدا بکنی باید ملیدی خوب بشه با چشم خودمون دیریم اگر کسی ندیده یا تو رشونش بریم بله این احساس ماست این درک ماست که خدا در ما گذاشته. میمونه انشاءالله انشاءالله به توفیق باری تعالی دلالت عقل حتی دلتی برای جلسوس او یاده مطلوی سبحانه و